تخلیط وزیر در احکام انجیل ساختوماری به نام هر یکی نقش هر تومار دیگر مسلکی حکمهای هر یکی نوعی دیگر، این خلاف آنز پایان تا به سر در یکی راه ریاضت را وجوع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 در یکی گفته که عجز خود مبین کفر نعمت کردن آن اجز هین قدرت خود بین که این قدرت از اوست قدرت تو نعمت اودان که هوست در یکی گفته که این دو برگذر بطبوت هرچه چه جد در نظر در یکی گفته مکش این شم را که نظر چون شم آمد جم را از نظر چون بوبزری و از خیال کشته باشیم شب شم اوصال در یکی گفته بکش باکی مدار تا عوض بینی نظر را صد هزار که ز کشتن شمع جان افزون شود لیلیت از صبرت مجنون شود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 در یکی گفته که بگذاران خود کان قبول طبعه تو رد دست و بعد راههای مختلف آسان شده است. هر یکی را ملتی چون جان شده است. گر میسر کردن حق ره بودی هر جهود و جبرزو آگه بودی. در یکی گفته میسر آن بود. چه حیات دل قضای جان بود هرچه زوق تبع باشد چون گذشت بر نارد همچه شوره ری و کشت جز پشیمانی نباشد ری او جز خسارت پیش نارد بی او آن میسر نبودن در عاقبت. نام او باشد مؤثر عاقبت تو مؤثر از مؤثر بازدان، عاقبت بنگر جمال آن در یکی گفته که استادی طلب، عاقبت بینی نیابی در حسب، عاقبت دیدند هر گون ملتی، لا گشتند سیر الزلتی. آقبت دیدن نباشد دست باف کی بودی زدینها ها اختلاف در یکی گفته که استا هم توی زان که استا را شناسا هم توی مرد باش و سخره مردان مشو رو سر خود گیر و سر گردان مشو در یکی گفته که این جمله یکیست هر که او دبی نده ول مردکیست در یکی گفته صد یک چون بود این که اندیشت مگر مجنون بود هر یکی قولیست زده همدگر چون یکی باشد یکی زهر و شکر تاز زهر و از شکر در نگذری کی تو از گلزار وحدت بربری. این نمتوی نو ده تومار دو برنوشتن دین ایسا را